بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین با سرعت و سلام علی سایق الانبياء و المصلیین قبل قاسم محمد نحمده و نصیحو و نشکورو و عليه و نستغفو. بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما محمد الا رسول. من قد رسل رسول افئن ما تعب خثل انقلبتم على اعقابكم اللهم كن لولي كل خت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه و في هذه الساعة وفي كل ساعة و دیگن و حافظا و قائدم من آسرا و دلیلن و عینا حتی تسکنه اربکتو آخ و تمتعه تی آتویدا تسلیت از می کنم سال روز خاتم انبياء و حضرت موسی و همچنین در آستانه سال دوم حضرت علی کبیر موسی رضا سلامت الله و سلام او علیهم اجمعین به تمام انسان حق جو حجیم و به تمام انسان هایی که فطرتشون در راه خدا گمراه نشده است و به ملت بزرگ ایران و امت اسلام و رهبر عزیز انقلاب به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز مورخین در باره روز رهلت پیخنبر مختلف بحث کردن ولی مشهور بیست ماه هشت ما به سفر است امروز شاید وسط روز بود که روح نامحدود بر اکرم صلی الله علیه و آلیه سلم در حالی که سر مبارکش به دامن امید المؤمنین بود پرواز کرد و به سفارش رسول اکرم فرمود وقتی که رو از بدن من خارج میشود، تو دست مقابلم قرار بده و این رو به سر و صورتت بکش و در همین سر به امین فرمود که فرمود از هر کلمه ای هزار با از علم برای من باز شد مشهور نوشتن بیست و سفر بود روز دوشمده از ابن عباس نقل می کند در اعلام الورا که ابن عباس گفت وحلت که گفت وحی بر پیغمبر اکرم روز دوشنبه نازد شد چون درباره وقت این سخن هست و همچنین در روز وفات بعضی رحلت رو جمعه گفتن از کردم مشهور رحلت رو روز دوشنبه گفتن از ابن عباس نقل می‌کنند که به سطح پیام برا اکرام و رهلت اون بزرگ با روز دوشنبه بود وقتی که پیام اکرم از مکه خارج شد دوشنبه بود وقتی که پیام اکرم به مکه برگشت و فتح مکه بود دوشنبه بود روزی که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم رحلت فرمود و روز دوشنبه بود. در هر حال. اگر دوشنبه باشد که مشهور چنینه می نویسند چهار شنبه پیغمبر رو به خاک سپردن. یعنی از دوشنبه وسط روز که جان مبارکش به آسمان پرواز کرد بدن مقدس در خانه بود امید دول مؤمنین بر پیکر اون هستند نماز کنند. بعد مردم در خانه آمدن پیامبر فرمون، امیج مؤمنین فرمون، پیامبر امام همه بوده است. در در نماز بر اون امامت نباید بکنیم. دست دسته بیایند نماز بگذارن و چشم مردم مدینه و مردمی که از جاهای مختلف آمده بودند در این سه روز دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه آمدند و رسیدند و نماز گذاشت. پیامبر اکسم امید مؤمنین فرمود که ده دو ده تو وارد منزل شدید ده ده وارد می شدم بعضی روایات داره نماز به این صورت نبود که تکبیر به گویند و دعا بخاند این نماز رو پیغم امید مؤمنین گذاشت ولی گروه گروه که می ده نفر ده نفر یکی وسط اونها می ایستاد می گفت ان الله و ملائکته روی صدون النبی یا ایها الذین آمنو صلو علیه به و به همین نماز را خلاصه میکرد نماز اصلی را امید المؤمنین گذارد البته در صقیفه هم بحث و جر و و جنجال خلافت بود که اونها هم که در اون بحث بودن دیگه نیامدن تبقه یاد که نماز بگذارن اون نماز رو اصدید و امید المؤمنین علیه السلام گذارد پیامبر اکرم به امیز تفارش کرد وقتی که سر کش در دامنش بود فرمود لا تخرج من منزل حتی تا, حت تا زمانی که رمستی یعنی منو در خاک بگذارید بلزا امیگر مؤمنین از منزل بیرون نیامد تا او رو به خاک بگذارید این جریان یک یه چه از تاریخ البته اون چه میکنم نه تنها تاریخ شیعه است از مورفین شیعه و سنی با هم نقل میکنم پیغمبر اکرم در خانه عایشه ام المؤمنین بود در حال احتزام به سرش به دامن امید المؤمنین بود ساتم سلام الله علیه آمد کنار بستر. نگاه می کرد به چهره پیغمبر که در حال احتضار از دو بیوش گفت زمزمه کرد و ابی یز و یوسف است که همان رخشید جمال لدیت اسمت للالام یعنی اون چهره زیبا و روشنی که وقت وقتی خوش سالی در مکه شد به برکت چهره زیبای تو آسمان بارید وقتی این دو زمزمه میکرد با گریه زمزمه میکرد با گریه هم زمزمه کردن یه صدایی خواب ناخواد داره پیامبر اکرم چشم مبارک بازه و قاره به سوتن زئیل. پیغمبر با یه صدای خیلی ضعیف فرمود بنیا حازا قولا عبی چالب. لا تخوره قوله محمد الا رسول تنها این قص به دستور این آیاتی است که ابوطالب فرمود تو این شعر رو نخوان تو این آیه شریفه‌ای از قرآن رو بخوان که محمد صل الله علیه و آله رسول خدا به ما مات او قتل انقلبتم علا اعقاب کن اگر بمیره یا شهید بشه شما برمی گردید به عاقبتون، به اصل جاهلیت دین رو میگذارید یعنی فاطمه جان در این لحظه لحظه است که نوشته جهان بشریت به امت متره چیزی را بگو که به امت مربوطه به فکر و هدف من مربوطه که چهر من به صور منزی هاست به خدا به خاطر همین صورت من خوشتاری رو از مکه برداشت این یک قصه ای در واقعی بوده است تو برنامه آینده رو بگو چون گرد پیغمبر اکرم نگران برنامه آینده بود و از دارد وقتی که رسول اکرم از مسجد خارج شد در وقتی که از بستر بلند شد و رف مسجد و بعد صحبت کرد و بعد برگشت آخرین لحظات پیگمبر در خانه بود و آخرین بودن پیغمبر در مسجد بود برگشت آمد به طرف قبرستان بقی فرمود: بود از علیکم اهل القبور لیهنه اکم بما اصبه ما فیه مما فیه ناس تحنیت میگویم به شما این خفته زرفیر خاک رو به شما تبریک میگویم که در دل خاک هستید بر شما این محک مبارک زیرا ملتی که زنده هستن در گرفتاری افتادن شما گرفتار نشدید و رختی اون این از کی فتن که قطع لیل المسلم فتش نهو همین طور پشت سر هم داره میاد یت و اخر و اول ها ادامه در این فتده ها تا ظهور حضرت مهدی از ات جلال آبته ها را هر یک پس از دیگری می آید چنین روزی است برای شما ای زنده ها خوش شما که مردید ای مردها پایان بر اکرم که به فاطمه سلام الله علیها آفرمود قرآن بخوان این مطلب لو خاص بگوید که آینده چه خواهد شد به فکر آینده باشی به فکر میراث من باشی میراث من و دخترم مراقبت کن میراس من چیست؟ اون چه پیغمبر میراث گذاشت چه بود؟ که به فاطمه فرمون چنین بگو اون چه میراث پیغمبر بود خبرها به احادیث متواتره که فرموند اینی تار کن سیکم و سغلن به اطلتی ما انتمستکتم به ما لمت از اللو اگر من رفتم فتنه ها ولی اگر اون که وسیعت کردم که به کتاب خدا و اهل بی که من که حافظ کتاب خدا هستند عمل کنید گمراه نمی شود. یعنی میراسی گذاشتم به نام قرآن و به نام حافظ قرآن این را به صورت فهرس و خیلی فشرده به اهل فن از خونم، از اولامان به محققان که حدیث سالین به صورت متباطر از اهل سنت اثرتیس کتاب الله و اثر ولی کتاب الله به سنتی از سه نفر آمده یا چهار نفر از صحابه آمده کسانی که از صحابه نفرد کردن دروغه بودند مثلا از سعید خدری نفرد کرده که اون ناقل خود ناسبی بوده و لذا علمای اهل سنت هم که عرض رو می شنوند تن انایت دارن بلیم اینکه این, این چهار نفر که نقل کردن کتاب الله به سنتی به نقل اونها اصلا اعتبار نیست، ولی بسیار از اصحاب که پنجا و هفت نفر از اونها از بزرگان مسئله قدیم رو نرکردن و با کتاب الله به اطرتی نرکردن عقلا هم اطرتی درسته نه سنتی چون سنت مثل قرآن کتاب سامته همان طوری که قرآن ساکته سنت هم ساکته همون طوری که قرآن رو می شود به تعبیرهای مختلف در آور سنت هم می شود تعبیرها کرد بلزا حافظ کتاب خدا باید انسانی باشد محصوم از خاندان وحب آگاه به وحب مفسره و مبین و به این مطلب است که امروز بسیاری از علمای بزرگ سنت ام پیش دارن دارن که دارند قبول دارند که اهل بیت پیغمبر عالم به وحی‌اند اهل بیت پیغمبر که وحی را کاملاً می شناسند و می دانند این رو معتقدند بنابراین بر این اص و اساس تکیدند حافظ وقت اهل بیکند هر کدام در زمان خود به شراعت خود امروز که روز شهابت حضرت مجتباه به قول مشهور مورخین است یکی از کسانی است که حافظ قرانه امام حسینم حافظ قرانه ولی امام مجتبی شراعتش همین بود امام مجتبی چنین بود وضعش بنده در باوی حضرت مجتبی علیه السلام تو دو کلمه خلاصه از میکنم کلمه ی اول این است این کلمه رو فقط شیعه نمیگوید این رو بنده نقل میکنم از ارشاد مفید که از بزرگان شیعه است و از ابن عصیر در کامل ابن عصیر که هر دو این رو گفتند ارشاد می گوید که جماعتی از رؤسای قبائل که لشکر حسن ابن علی بودند، کتبو الامو معاویه یک نامه سری به معاویه نوشتند نوشتن تو بیا به سوی کوفه تو عجله کن به آمدن اراد نگران نباش ما حسن ابن علی علیه السلام رو وقتی نزدیک که تو رسیدی که لشکرد وسیدی قفرتن او رو میگیریم تصدیمت میکنیم این نامه رو و این نامه ها رو و معاویه فرستاد برای امام مجتبا نوشت شما با این افسران میخوایی با من به جنگی امام مجتبی علیه السلام وزد شنید بود وزدش اگر میخواست به جنگه هم شهید میشدن آخرش هم این بود که حسدت و دستیر می کردن و به معاویه تحویر می دادن. این یک واقعیت کامل ابن اسیر در کامل می نویسد و بعد از این جریان که سل رو امام حسن تذیروف یه خطبه ای ایراد کرد و در اون خطبه فرمود: ما یوسینا ان اهل شام شک کن بلا ندم ما نگران نبودیم در جنگ با اهل شام نگران نبودیم لشگر میجنگید، میجنگید. می, می سلام و علا صبر، صبر با شجاعت می جنگید. خطاب به مردم فرمون زمان پدرم دنیا شما پشت سرتون بود و اما امامکم دین شما جلوه بود ولی امروز دین شما پشت سرتونه و دنیاتون جلوتونه تونه می نویسد همین کامل صدای گریه همه مردم برند شد تمام صدای جدزد جد جمیزدند شما چنین کردید به من مجبور شدم بنابراین نکته همه اینجاست که اهل بیت علیکم و حافظ قرآن حافظ کتاب خدای هم به این کتاب خدا که امروز هم خوشبختانه جهان اسلام به تبریت از بزرگان اسلام که اونها هم در کتاب ها برای اهل بید عظمت خاصی قائلن این عربین سید و که سنی و شیعه رفتن مسیحی هم رفتن احترام میکنند بر این اساس است که بقا دین پیغمبر اکرم بر اساس قرآن به طبیین و عمل اهل بیت علیه مسترات و سلام باشه و دین هم جلوه دنیا عقبه امانت جلوه تقوا جلوه حق پرستی به صدق و پاکی باید نگاه کنیم بهش اول به قرآن نگاه کنیم به اطرتی که حضرت وریه است اجرال لا, لا فرج شریف است نگاه کنیم اون اطرت الان اصاسه و بر اون اساس کنیم خودم و عزیزان را به تقوا توصیه می کنم به بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا کل کلکوثر فصل در ربک خد ان شانه اکه ونقب الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین عبدالقاسم محمد و علی وسیعی و خلیفت عمید المؤمنین علی ابن عبی طالب و علا رسول الرسول از زهراء و الحسن والحسين ابن الحسين و ابن علی جعفر ابن محمد و موسیبن جعفر و ابن موسى ومحمد علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی و القائم العسكري و جدک علا و امنا اکفی بلادک در این خود به چند نکته را به صورت فهرست و فشرده از برم. یک تصدیت به بازموندگان و اینکه حادثه این با کمال تأسف که ملت رو به کشور رو ازادار کرد ولی اونها که رفتن با قفران زنوب رفتن همون طوری که در بعض احادیث ماست کسی که خراب شود دیوار و سخت برو و از دنیا برود سواب شهید دارد بنابراین اینها یک عجر و خاصی دارند و خداوند متعال هم به شما الله صبر مرحمت کند و در برابر اون صبر هم به شما خدای متعال پاداش در دنیا و آخرت مرحمت خواهد کرد الله و اما اون چه وظیفه مردمه اولا قدردانی و تشکر میکنم از تمام ملت بزرگمون که برای سید زدگان کمک ها فرستادن از دولت محترم نهادها تشکیلها شهرداری هم که اعلام کرده فرستاده و کسان دیگر و اوقاف جاهای مختلف این جای شکر و قدرانی است که مردم ما اینقدر مهربانند و علاقمندند ولی حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این حدیث رو ارسل میکنم. برای آنان که کمک نکردند به قدرت مالی دارند، به اون اینه می من اصفه ولم یهتم به عمود المسلمین فریصه به مسلم اگر کسی صحب کنه به امور گرفتاری های مسلمین اهمیت نده این مسلمان نیست یا حدیث دیگری من نادا یا للمسلمین اگر کسی سدا کرد گفت مسلمان آ فلم یو جبخو فلیسه جوابشون ندادن از مسلمان ها نیست بنابراین مسلمان بودن یک آثاری داره یکی شمینه خب کسانی که توان دارن خانه را رو به عهده بگیرن کارهای بزرگ به اینکه که حزینه های گزافداره به اهده بگیرن و به بهترین وز مسکن سازی کنن و همچنین تمام کارها این هر انسانی که خطرت شبیداره چنینه مخصوصا کشور ما که خود ایمان و محبت و ایثار خودشون رو نشان دادن ولی خب گاهی در این فضای لطیف گاهی در این فضای پرجاذبه کمک و خدمت و هماسه همایت از ضعیف که بلنده یک صدای کسیفی از خلقوم یک آدم شریری در گوشهی بلند میشه میگوید حتی کمک به سزدگان ایران هم نکنید این صدای ضعیف این سیدیف سلای ضعیفی که به وجود آمده است این بر همین اساس است که این در دنیایی که ما زندگی می کنیم وقتی این زلزله به این محیبی بود به جای اینکه تشویق بشن دنیا کمک کنن ببینیم این اشعار این جور هست می‌زنن خب این بدبختی دنیاست که رئیس جمهور آمریکا اینقدر لا با صحبت کنه این بدبختی دنیاست که کشوری که میگه به دولتی که میگه من خامی حرمین هستم به نام آل سعود این چنین جنایت کنه در یمن در سوریه و الان هم نقشه ها و ترها برای کشورهای اسلامی انگد بدبخت انگد زلیل که بگوید که ما بوجه رو می و از اسرائیل درخواست کند حمله به کجا به به کجا رو این اینگر اینها بدبختند و زدیرند و اصلا به خدا و کمک های الهی و این که نظام نظامی ساقل نظام خلقت نظامی سلاهی بر اساس اسباب و ادل این ها در قلب در شهواتشان و با بند و بحث خیال می کنن رو و منظومه شمسی رو در اختیار میگیرند چه بدبختن این ها واقع. چه بدبختن به هر حال به تمام عزیزان زلزل شده شده برا همشون استخفار و حد زنوب و قلوب مقام برای آنان که رفتن تقاضا می و برای مجروحان شفا تقاضا می کنی و برای بازموندگان عجل و ثباب و پاداش الهی در دنیا و آخرت مسئلت دار مطلب دیگر همین بحثی مربوط به سعید حریبی که سعد حریری که در لبنان و این بساط این بساطم نشان میده که دشمن چقدر تظاهری میکنه و نقشه میریزه برای کشورهای اسلامی لبنانی که آرام میخواد متشنجش کنه و منطقه رو متشنج کنه. ولی به حول قوه خدا مردم لبنان بیدارن تباعف لبنان بیدارن و تمجید و تشکر میکنیم از همشون مخصوصا از آقای سید نصر الله رحبر حسب الله با اون بیان خوبشان که وقتی سعد حریری به لبنان بیاد همه استقبال خواهند کرد همه خواهند لفت استقبالش این کار مرد و معزیز لبنان درست به معنای خونسا کردن توطئه آل سعود و سردونیست رو همین وحدت شما و همین اتحاد شما و همین که دور اون رو بگیرید گرم برخلاف اون که او قصد داشته است این برای ملت لبنان یک یادگار بزرگ با! <تصفح> با. و با عرض رشیست و نکته دیگر این است که این میراثی که از کردیم از تایفم برای اکرمه این میراث الان وقتش خیلی حساسه که این رو حفظ کنیم ملت‌های مسلمان لبنان کشور‌های دیگه ایران یک انسجام و وحدتی باید پیدا کرد یک وحدتی در برابر این عمه توتای دشمن و ما محمدون الا رسول قد حلت من قبله رسول و این ما تاو قتل انقراتم على اعبارکون بر نکردیم دشمنان میخوان ما برگردیم به جاولیت ولی ندای پیغمبر اکلم امروز این بود که شما بر نگردید به جاولیت این یک وظیفه است. این و اتحاد در تمام کشورای اسلامی همه با هم بودن و حتی بعض دولت‌های شد به شقی و فاس و عقب افتاده مانند حکام آل سعود و آنان که باشون همکاری میکنن ملت‌ها ازشون جدا بشن مردم اونها رو محکوم کنن این الان زمانی هر کس که نماز نخونه چه در مسجد الحرام چه در هر گوشه از این دنیای ای اسلام باید به این ندای پیغم برگردد بر بر که انقلبتم علا اعهاب و متوجه به این اساس کن این وظیفه ماست در داخل کشور هم وظیفه ماست دشمن معلومه امریکا و سهدونیست معلومه این اوزا روشن دیگه وحدت به انسجام به وقتانه در کشور ما مسئله بلایت فقیه مطرهه که این بلایت فقیه محوره به قطبه به اون سنگ و میله آسیاست که بر دور اون میله آسیا می‌چرخه. باین اساس وحدت به شجاعت به صداکاری و شجاعت، و فداکاری، و اینکه ما این که ندارد خون آدم بریزه، شهید بشه. فداکار بشه این ایثار رو فداکاری و شهامت و شجاعت و لبک یا حسین و لبک یا این شعارها ها اصلا دشمند خانه نشه دشمنو رو عقب میزنه دشمن رو معیوس میکنه این یک وظیفه ای الان در سطح جهان اسلام در برابر این همه دشمن ها و بدبخی ها نکته دیگری هم عرض کردم موضوع وقت که نماینده محترم ولی یه فقید در وقت صحبت کردن با بنده هم صحبت کردن که پرونده های رو همه رو مشخص کردیم که واقف چه هدفی داشته چه نظری داشته تمام اینها مشخص شده و ما بر اساس همون نظرات واقف رو اجدا می کنیم کسانی که تمکن دارن وقت کنن بر اون چیزی که می دارن که این وقت برای همیشه به عنوان باقیات و برایشون هست نوچه دیگر از که کردم شرکت کردن ایزان نیروهای مسلح از همه جوانه به نیروهای مسلح در همین مراسم و در صداکاری ها و در کارهایی که بودن و الان هم در ازاداری ها شلکت کردن برای همه معجر رو از خدای متعال درخواست میکنی روزه روزه هم هست من یک کلمه ای فقط یک جمعه از میکنم در همین جا که وقتی پیغمبر اکرم که چهار شمده مثل پس فردایی دفت شد فاطمه آمد نزدیک انس ابن مالک بود به انس گفت چگونه توانستید بر بدن پیغمبر خاک بریزید خیلی عشق بعد زخرا آمد و نشه از کنار قبل این خاک برداشت و بوید گفت ماذا علم متشمم تربت احمدی اللای شما از زمان قبالی ها گفت بابا کسی که تربت تو را ببویه هیچ عطلی رو در دمام عمرش دیگه نمی بویه صبت علی مسائب و لو انها صبت علال ایام سرن نیال یا بابا مصیبت ها اون قد بر من فراوان شد که اگر بر روز روشن نازل می شود تاریک می شود فلا اجعلن نلحوز فلا اجعلن نلحوز بعد که مونسی بعد از من دیگه عشق و قصه انیس و مونس منه وله اجعلن ندم فیکر و شاهیا، این گفت و قطرات عشق ها برای دخبرت فاطمه دانه های گردن بندیست بر گردن من سلالله علیک یا رسول الله الله عليهكم یا اهل بیت نبو بسم الله الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُوْسِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا اللهم یا حمید بحق محمد یا آلی بحق علي. یا فاطر و به حق فاطمه یا و به حق الحسن یا قدیم الهستان به حق حسن خلایا فرج امام و آجران برسا چهان اسلام را از شر دشمنان حفظ توتعه های دشمنان را به خودشون باز کرد مردمان ضعیف و مسلوم یمن به سوریه و افغانستان به نقاط دیگر را خدا یا نجات از ایزان زلزله شده را مغفرت و رحمت خاص را شاملشون به باز مندگانشون سهر و عج انایت بفرماید مشکلات جهان اسلام را رفت بفرماید مشکلات اقتصادی، سیاسی، اخلاقی کشور ما را مرتفع بفرما دامن پسران و دختران ما را به تقوا بدا فروردگار و رحبر انقلاب اسلامی را در ساوی وریگه است به پرچه به اون حضرت مستدام و مؤسس بدار ما را به اون چرزای توز توفیق برمت کنم دست های خالی که به سوی تو بلند شده در چنین لحظات این دست ها رو پر کن و برگردان. همه را حاجت روا بفرما که در آن و مادران و زود حقوق و شهده و امام شهدا را بر سر صحبه پیغمبر اکرم و حضرت مجتبا و امام رزا زیافت اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و قلد ادا ارواه هم صورت فاتحه کتاب و سواه